بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه اجمعین اما بعد سب من درس از درس از تفسير سوره يوسف غیه الششم وكذلك يجتبیك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك خطاب يعقوب بفردندش يوسف عليه السلام بعد إنك خابتش رب بدرش ميجويد كدي دم ستاره تارة بمن سجد میکنن بش میگه خابتش رب ردرانه نجو بعد بیش میگويد وكذلك يجتبيك ربك هم کنان النعمات در آل ابراهیم ادامه دارد چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می وقتی که سوال میشن. من اکرامون ناس چه کسی مکرمتر نزد الله رو فرمودن متقی ترین شما یا متقی ترین انسان ها فرمودن نه نه از اون از تو میپرسیم منظورمون چیز دیگر هست فرمودن مکرمترین انسان ها نزد الله یوسف کریمه فرزند کریمه فرزند کریمه فرزند الله یوسف فرزند یعقوب، یعقوب مکرم نزد الله، پیامبری است پیامبران، یوسف پیامبر فرزند پیامبر، فرزند پیامبر اسحاق و فرزند خلیل الله، اونم پیامبر خدا به خاطر همین لقب ابراهیم انبیاس پدر انبیاس. این سلاله پاکه. اینها الله اونها را انتخاب کرده، استفا کرده، اشتباه کرده. این انتخاب الهیه و یک منزلت و یک مقام اکتسابی نیست که بهش رسیده باشن. یعنی بیان با پرهیزگاری و با علم و عمل و طاعت و عبادت به این مقام نائل بشن به این شرف نائل بشن اکتسابی نیست مقام نبوت مقام رسالت مقام رسالت مقام انتخابه خاطر همین اینجا الله جل شانو سخنان یعقوب چنین یاد میکنه و كذلك یجتبیک ربک چنین الله ترا انتخاب میکند یعنی انتخاب میکنه به مقام نبوت یک شرفی هست که تو بهش نائل میشی همون تو که رسول الله صلی الله علیه و در سن چل سالگی به مقام نبوت مشرف شده بس این مقامی هست که یوسف علیه السلام به آن مجده داده میشن بهش مجده داده میشن این مقام مقامی هست که بهش مجده داده میشن و این مجدگانی برای رسیدن به اون امتحاناتی هست که باید از اون امتحانات با موفقیت عبور بکنه یوسف علی سلام باید مواظب خودش باشه سخت به خودش باشه این مجده است اگر دست از با خطا بکنه شاید از این مقام از این شرف محروم بشه وقتی که زلیخا میاد بهش اغوا میکنه که در فتنه و رو بیاندازه اونجا نجات مییابه می میدونه مقامش مواظب خودش هست. امتحانات. موفق از این امتحانات یوسف برآمد تا اینکه به این مقام و به این شرف نائل شد و که من تاويل الاحاديث ای که من تاویل الاحاديث و ترا یاد دهد. چی یاد میدهد؟ تاویل تاویل یعنی چی؟ تاویل یعنی تفسیر تفسیر سخنان احادیث سخنه ولی چه سخنی؟ چه سخنی را یوسف علیه السلام یاد داده شدن که تفسیر بکنه؟ بیشتر مفسرین حرفشون روی تعبیر خوابه تفسیر خواب جنبندگی بین نکات خواب و تفسیر اون را الله این علمش را به یوسف یاد داده یک موهبه ای هست یک استعدادی که الله در هر کسی نگذاشته این استعداد را به یوسف داده مقام نبوت و مقام تفسیر خواب هر کسی تفسیر خواب بکنه یک استعداد یک موهبه است یک شرفی هست که الله به هر کسی نمیده اینجا یک مسئله هست و هم این که استعدادها ارزاقیان از سوی الله روزیا هر کسی الله یک چیزی روزیش کرده باید به اون روزیش قانع بشه یکی به مقام علم یکی به مقام پزشکی یکی به مقام مهندسی هر کسی را الله به یک نحبی روزیش کرده چه از اون کاسبی و دخلش چه از اون علمش و حرفش الله یک استعدادی بهش داده که در این استعدادها ما نباید به هم دیگر حسادت ببرزیم این روزی هایی که الله خاص یوسف قرار داده موجب حسادته یعنی سبب شده که برادرانش بهش حسادت بورزند ای فرزندم داره بهش میگه این مقام این شرف تو بهش نائل میشی اینها موجب حسادته و یکم نعمته او علیك و علی آل و این مقام نبوت را بر تو کامل و تمام میکنه این مجدگانیه مجدگانی هست همون که رسول صلی اللہ علیه وسلم در حجت الودا مجده داده شده اونجا و تو علیکم نعمتی اتمام نعمته یعنی نبوت مقامش شرفش تمام میشه با ابلاغت یعنی اون دین الهی را تو ابلاغ خواهی کرد خواهی گفت به این مقام به این جایگاه و به این شرف تو نائل میشی که ادای امانت بکنی تو را انتخاب کرده به نبوت. و به تو علمی میدهد که بتونی بین مردم قضاوت بکنی و خوابهای اونها را تفسیر بکنی و دین الهی را ابلاغ بکنی با اتم بچه و دین الهی را چنان از و خاصه ابلاغ بکنی و علی آل یعقوب این نعمتم نتنها بر بلکه بر آل یعقوبم هست یعنی بر تمامی فرزندان آل یعقوب بر تمامی نسل یعقوب کما اتمها علی ابویک همون ترکه ابراهیم علیه السلام و فرزندانش اسحاق و اس چنانچه از پس این نعمت بر اومدن و شکر سپاسش به جای وردن تو و برادرانت از این امتحانم موفق برخواهی اومد شما هم همینطور به این مقام نائل خواهی شد یعنی برادرانت با وجود که اشتباه میکنن الله تو بشن نمیپذیره و, و اونها به اشتباهشون پی خواهند برد و این نعمت دینداری و عبودیت و بندگی بر شما اتمام می‌گردد كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق من اسم اسماعيل نميا چون اينها فرزندان اسحاق از نسل اسحاق فرزند ابراهیم یک مسئله ای که فقط اینجا از لحاظ لغوی یاد میشه و اونم اینکه گفت پدرانت از ابراهیم و اسحاق ابويك من قبل و اسحاق جدش اسحاق پدرش يعقوب جدش اسحاق جد پدرش ابراهیم انسان می شود که به پدر بزرگش یا پدر پدر بزرگش نسبت داده بشه بهش گفته چه فلانی فرزند مثلا من فرزنده به جایی که گفته بشه فرزنده احمد فرزنده عبدالله یا فرزنده محمد به جد چهارم مثلا انسان پدر بزرگش جای پدری او را می گیرد اگر پدرش فوت بکنه از لحاظ ارس و میراز پدر بزرگش جای پدرش را می گیره پدر بزرگ جای پدره این ربک علی حکیم پروردگارت علیمه و حکیم رب داره این تا صفت الهی با این مقام نبوت با این شرفی که یوسف بهش نائل شده پروردگارتو علیمه علیم علم سابق داره میدونه که یوسف گمراه نمیشه چون گمراه نمیشه آدم خوبی و صالحیه مؤمنیه و متقیه الله چون از قبدون سه او را به این مقام و به این شرف نائل ساخته انتخاب کرده برای این مقام علیمه علمش سابقه الله قبل از اینکه قلم پنجاه هزار سال قبل از آفرینش همه چیزی را که در کن قرار بشه می الله قبل از اون علیم بوده قلم پنجاه هزار سال قبل از آفرینش مینی هر آن چیزی که قرار رخ بده این علم سابق الهیه الله از قبل می دونسته که یوسف کی خواهد بود و چی خواهد شد این ربک علیم علمش یه طرف و حکیم کارشم محکمه کارش محكمه از اینکه یوسف مبتلا بشه به اینکه برادرانش بیان در چاه او را بندازن، او را بفروشند، در فتنه زلیخا واقع بشه و سپس در زندان انداخته بشه، هدف این نبود که خار بشه، زلیل بشه. حکمت الهی از این امتحانات خار بودن یوسف نبود، بلکه عزت یوسف بود. همونطور که میگن جوجه را آخر پاییز میشمرند. خاتمش مهمه اگر این مراحل یوسف درش واقع نمی شد به اون مقام وزارت اون پادشاهی که در مصبود نمی رسید وزیر خزان شد کل امور مالی پادشاهی و امپراتوری مصر کل خزانه پادشاهی و امپراتوری مصر به دست یوسف سپرده شد خب این مقام بالاییه چطور به این مقام رسید؟ الله در کارش حکیمه الله در کارش حکیمه حکمت بود اون موقعی که در چاه و رانداختن و اون موقعی که او را فروختن تا اینکه به این مقام و به این شرف چه از مقام حسی و معنوی بهش توفیق یافتن مقام حسی وزارت امپراتوری مصر مقام معنوی نبوت و رسالت این دو تا مقامی هست که با توجه به علم و حکمت سابق الهی یوسف علیه السلام به اون توفیق داده شده لقد كان في يوسف و اخواته آيات للسائلين لقد كان في يوسف برای شما خطاب الله من و شما برای شما عبرتیس در يوسف لقد كان لكم في يوسف و اخواته و برادرانش آيات. یعنی عبرت درس نشانه برای کی برای هر کسی نه آیات للسائلين برای کسانی که خواهانان آدم خواهان علم باشه علم رو میابه کسی که خواهان علم نیست جا در مثل نشستیم پنجه نفر بودیم شدیم 20 نفر سی نفر نخواستن نخواستن خودشون محروم میشن کسی که بخواد محروم نشه میتونه محروم نشه میشینه میشنوه دست خودته انگیزه و احساس نیاز را باید خودت در خودت ایجاد بکنی این نیست که انسان بدونی که دست به غذا ببره سیر بشه غذا گذاشته شده که تو با دست خودت برداری بخوری سیر بشی. سیر شدن توفیقی نیست. اسباب داره وسایل داره. برای اینکه توفیق سیر شدن رو پیدا بکنی باید از وسایلش استفاده از کاشق استفاده بکنی برداری یا با دست بخوری تا سیر بشید. علم نمی میتون تا گوش فراندی از وقتت نظری برای سخر الهی برای در که در سوی یکیهسه تا گوش فراندی نمیتونی یاد بگیری. علما اصلا ما نمیفته بر قلب ما انما العلم بالتعلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم علم و تعلم با یادگیریه با درس یاد بگیره منم این چیزی که دارم میگم یاد گرفتم که دارم یاد میدم خوندم میرم تفاسیر را میخونم سخن علما را میخونم با توجه به لغت عرب و احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اده اینها را ویاد میکنم علم با تعلمه من باید برم یاد میگیرم تا یاد بدم کسی که بخواد یاد بگیره یاد میگیره کسی که نمیخواد أنجوشك نميقا فرابدا مثل منافقين أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نمیخوان قرآن رو تدبر بکنن چون نمیخوان قلبشون پلم شده الله تشبیه میکنه به یک ظرف در بسته فلوم شده قلبشون قفله کلیدش دست خودشنام به یاد میگیرن دلشون بخواد یاد میگیره. انسان دلش بخواد دلش بخواد یاد میگیره و دلشم نخواد محروم میشه اگر کسی درس نگیره عبرت نگیره الله این پندها را گذاشته اندرزا را گذاشته اون کسی که نره این درس ها و عبرتا را از قصه یوسف نگیره محروم به الله حکیمه این قصه را یاد کرده برای من و شما برای که درس را عبرت بگیریم کسی که نمیخواد درس را عبرت بگیره جاهل بمونه و یاد نگیره کی باید سرزنش بشه ملومات بشه خودش خودش نخواسه لقد کان فی یوسف اخواتی آیات للسالین بدون پس برای شما در این قصه هایی که داریم یاد می کنیم آیات ها نشانه ها است درس ها است اندرزا است این نصیحت الهیه نصیحت را آدم باید خوب گوش بده آویز گوشش بکنه این نصیحت را باید آویز گوشش بکنه بچه های ما باید یاد بگیرن ما فرزند داریم همونطور که یعقوب که پیغمبر خدا بود فرزند داشت بین فرزندان یعقوب به نسبت برادرشون که پیغمبری از پیغمبران الهی بود حسادت ورزیدند وقتی که اون کسانی که در خانه او منزل النبوه تربیت شدند در این فتنه واقع شدند از باب اولا فرزندان من و شما به این ابتلا و این امتحان امتحان میشن همون طور که فرزندان یعقوب امتحان شدن ماها هم در فرزندانمون امتحان میشیم. پس بادیات بگیریم که این امتحانات چطور ازش موفق بیرون بیایم. همونطور که یعقوب موفق بیرون اومد یعقوب چیکار کرد؟ در قصه یعقوب ما میبینیم یوسف بچه هست او را میفروشد ولی بچه ای که گمراه نمیشه چرا؟ چون پدر عقیده را درست یادش داده. تربیتش کرده بر ایمان به الله، بر عبادت الله. زلیخان نمیتونه بیاد وسوسه اش بکنه نمیتونه گمراهش بکنه غلقت الابواب میاد بالا بحثش درو میبنده ولی با این وجود یوسف دلش هم نمیکشه اینه اینکه یعنی این انگیزه شهبت هم درش نمیاد نسبت به اون زن حالا بحثش ما چرا نمیاد انگیزه هم در یوسف نبود چرا چون پدر با تقوا و با دیانت و علم فرزندش رو بزرگ کرده بود که منحرف نشه از لحاظ اعتقادی در مصر و در هر جایی از دنیا که بخواد باشه تربیت درسته از این پیامبر الهی حالا سوال پیش میاد خب پس چرا اون فرزندان اومدن با برادرش اونجوری کاری کردن اقوای شیطان بود همون طور که آدم اغوا شد همونطور که قابیل اغوا شد اینا پیامبر نبودن حالا میاد بحثش اگر فرزندان یعقوب اشتباه کردن به خاطر پیروی از هوای نفسشون بود یعقوب علیه السلام زنش همسرش همسر دوقمش فوت میشه یوسف و برادرش که اسم نازیشو نمیاد در های تورات و اینا اومده که اسمش بنیامین بوده یوسف و برادرش اینجا به عنوان برادر یاد میکنن نمیگه اسمش کیه چون مهم یوسفه. پیغمبر الهیه مادرشون فوت میشه یعقوب اهمیت خاصی به این دو تا فرزند میده چون کسی نداشتن اونها مادر داشتن از لطف حنان مادری که اینا محروم بودن بهشون میداد اونها بزرگ بودن نیاز نداشتن مادرم داشتن اینها نه, نه، مادری نداشتن این سبب حسادت شد که برادران یوسف بهش حسادت دو که از مادری دیگر بودن اذ قالو لیوسف و اخوه احبو الى ابینا منه زمانی که گفتن یوسف و برادرش احبو الى ابینا محبوبترن نزد پدرمون چرا؟ به خاطر اون مهر مادری که ازش محروم بودن یعقوب اینجا جبرانش میکرد برای دوتا فرزن سعی میکرد که اینها احساس تنهایی نکنن احب الى ابينا منا ونحن عصبة یک مسئله که اینجا هست بحث محبت روزیه شاید پدر یا مادر گوشزد به من و شما شاید یکی از فرزندان را مادر یا پدر بیشتر دوست داشته باشند اهمیتی بیشتری بهش بدن ما مواظب باشیم حسود نباشیم از قدیم گفتن الحسود لا کسی که حسادت میورزه به جایی نمیرسه خصوصا به مقام سیادت یوسف حسادت نوردید سید شد بلی برادرانش سر و سجدهش گذاشته الحسود هیچ سودی نمیبره و هیچ مقامی و منزلتی کس نمی کنه فقط خودخوری میکنه چرا فلانی داره چرا نف... چرا نمیدونم اون اینطوریه چرا اون فلان کرده همیشه در حسرته و ندامته و در خودخوریه در غم و غصه است اگر میخواهید غم و غصه نخورید حسادت به کسی نبرزید خصوصا در امور معنوی یعنی نه تنها در امور حسی حتی در امور معنوی یعنی اینجا نسبت یک محبت که امر معنوی بود نه حسی بحث پول نبود اینجا بحث خونه نبود یالا این براش خونه ساخت این براش ماشین خریده؟ نه بحث اینا نبود بحث مجرد محبت بود لطف بود محبت مهر پدری بود بیشتر میدیدن نسبت به یوسف و از خودشون نسبت به پدرشون مننت میدیدن و نحن عصبه ما مجموعه ده تا برادر مثل کوه استادیم خدمتت میکنیم نحن عصبه به کسرت خودشون می نازیدن. به تعداد خودشون الله میخواد اینجا یک درسی به ما مده عبرت در کسرت نیست در تعداد نیست، در کیفیته. و يوم حنين ان اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم عبرته ده صدين بار قران تكرار میشه در جنگ حنین زیاد بودید ولی شکست خوردید و نخورون تعداد تعداد نمیکوره یا در قصه اطلد و کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرا تعداد کم از تعداد بسیاری را شکست داد با چی تقوا با بحث غرور آفرینی عصبیت یعنی چی؟ اینجا گفتم نحن عصبه ما مجموعیم تعدادیم یک جمعیم که مثل کوه ایستادیم کنارت به دردت میخوریم فلان میکنیم این کار میکنیم ازت پشتیبانی میکنیم یک غرور و کبری که اینجا شیطان اونها را اغوا کرد غرور کبر جایی انسان متکبر میشه به نسبش جایی متکبر میشه به علمش جایی متکبر میشه به مالش جایی متکبر میشه زور و بازوش اینجا یک نوع کبری را اینجا الله داره یاد میکنه کبر به نسبت چی زور و بازو و با تعداد و کثرت الله همیشه ما رو گفتم زد میکنه که عبرت به کثرت نیست عبرت به کمیت نیست به کیفیته و انت اکثر من في الارض يضلوك اگر بخوای پیروی از بیشترین مردم در این روی زمین بکنی تو رو گمراه میکنن چون اصل بر اینه که مردم الا تعداد اندکی الان حکومت و دولت مردم رو درش آزاد بذارن یک شخصی بدین رو بذارن که مشروب و نمیدونه فسق و فجور براشن آزاد بکنه و یک شخصی که اهل دین و دیانت باشه کدوم یکی رو انتخاب میکنن ها این که دیگه همه چیز از ما میگیره همه چیز رو حرام میکنه اون کسی که اهل فسق و فجور رو انتخاب میکنن این انتخاب مردمه گوشزد الله و محمد صلی الله علیه و تابع مردم نشو چون مردم اون جمعشون تریبت نده چون جمع مردم در گمراهیه بنت تو اكثر من في الارض يضلوك تو رو گمراه میکنن این گش زده به ما عبرت در مردم نیست عبرت در دلیل و برهانه عبرت در دلیل و برهانه و نحن عصبه یک اشاره اینجا هست به عصبیت گفتن کبر که به وجود میاد از تعصبه جایی انسان تعصب گفتیم میبرزه به نسبت نسبش جایی به نسبت علمش جایی به نسبت مالش یک گش زدیه اینجا که برحضر باشیم ما از این نوع تعصبات مثلا مهاجرین گفتن یال المهاجرین و انصار گفتن یال الانصار این قضیه پیش اومد در یکی از جنگ ها وقتی که بر میگشن رسولا به مدینه رسولا سخت خشگی میشه ابدع والجاهلی و انا بین ظاهرانیکم همون ندای جاهلیت ندای جاهلیت عصبه تعداد جمع قوم قومیت نجات ما ایرانی من قشمیم من فرزند فلانیم ناز نب فرزند فلانی بودن من بطا بيه عمله لم يسرح به نسبه كسك عملش به درد بخور نیست خودش به درد بخور نیست نسبش به درد چیش میخوره نوح فرزندش آیا این مقام نبوت شرف پدریش به درد فرزندش خورد پس اینجا تذکری هست برای ما متکبر نشیم متعصب نشیم نه به نژادمون نه به پوستمون نه به رنگمون نه به علممون نه به مالمون ان ابانا لفی ضلال مبین پدرمون در گمراهی واضحیه چنون گمراهی گمراهی در دینش نه مقصدشون اینجا گمراهی در دین نبود بلکه مقصد طعن در عدالتش بود طعن در عدالت یعقوب بود که پدرمون یعقوب عدالت نمی کنه ما این همه خدمت می کنیم داره خوبی به یوسف میکنه طعن در عدالتش زدن نه در مقام نبوتش نه در اون شرف علمش نه در اون ارتباطش با فرزندانش اگر طعن در نبوت میزدند کافر میشدند اینجا سیاق و این جمله دلالت بر این میده که اونها منتقد بودن از رفتار پدریشون نسبت به در تعاملشون نسبت به یوسف علیه السلام خاطر همین الله او ابتدای این آیه را چنین آغاز کرد اذ قالو لیوسف و اخوهو احب محبوب تره بحث محبت رو میکنه در محبت پدرمون گمراهه در محبت نقد در تعامل و رفتار پدرشون زدن نقد کردن بنسبة برادر يوسف عليه السلام صلی الله على محمد علی محمد